دوستان سلام بحث سگگردانی روزا خیلی داغ شده و جالبه بهت بگم که بهترین حامی سگ اسلامه این رو حتما بیمیم چند تا مصطاق میخوام بهت بگم یک اسلام میگه که نگاه کن از سگ میخوای استفاده کنی حتما براش یه خونه جدا درست کن براش خونه درست کن خارج خونه خودت دو توی دین اسلام دریم اگه میخوای نماز بخونی و اونقدر آب کم داری که میخوای باش وزو بگیری ولی سگ تشنه است اون آب رو بده اون سگ تشنه بخوره یعنی خدا میگه ببین بنده من تو می‌خوای الان بیای با من نماز بخونی لازم نیست حتماً وضو بگیری تو اون آب رو بده به اون سگ اون سگ آب بخوره تشنگی‌ش برطرف بشه تو تیمم میکن و نماز بخون سه اگر سگ شکاری یا سگ نگهبانی یا هر سگ ای داشتی و کسی به اون زدنه زد یا اون رو باید دیه بده اینا رو شنیده بود رو شنیده بودی یعنی که دیه داره سگ چهار حق نداری که سگی رو بزنی و مورد آزار و اذیت قرار بدی و شعان حرامه که عمدن تشنگی بش بدی یا گرسنگی بدی و خیلی سفارش شده اگر یه سگی پا شکسته مسئورتی داره فورا اقدام کن برای درمانش نظر درد بکشه و جالبه بدونی که توی جریان فتح مکه وقتی پیامبر با هزاران نفر داشت وارد مکه می شد سر راه دید یک سگی داره به بچه ها شیر میده و به خاطر که اون سگ بلند نشه، به سربازانش گفت راه رو یکم کچ کنیم که این سگ بلند نشه یعنی برای اینکه مزاحمت ایجاد نکنه چندین نفر اذیت میشن که خواستم دور بزنن این توجه خاصی که اسلام به سگ و حیوانات داره اما سوال اینجاست پچه را نجسه ببین عزیزم من خیلی از مذهبی ها و حتی غیر مذهبی ها نمیدونن که اصلا نجاست هیچ ربطی به کثیف بودن و آلودگی نداره اصلا نجاست مقوله جدا از آلودگی و کسیف بودن جداست اگر قرار نجاست به مرد کسیف بودن و آلودگی باشه، این خونه انسان که نجسه چه آلودگی داره؟ اگر آلوده هست برف است، پس چرا خونه ماهی که نجس نیستش، یعنی آلوده نیست؟ ببینی، اصلا پس از نداره. نجس بودن، بعضی از چیزها در دین اسلام هر کدوم فلسفهای داره، و اما فلسفه نجس بودن سگ یکیش اینه. از اونجایی که سگ خیلی وفاداره خیلی نجیبه و انسان باهاش آنس میگیره رفیق میشه اونقدر که شاید جای بچه خودش بشه که الان داریم میبینیم اسلام میگه ببین تو از سگ باید استفاده بکنیم و من و من خدا هم سگ رو طوری یا که بتونه به طور خدمتگزاری بکنه از نگهبانی و چوبونش و شکارش اینا گرفته تا این استفاده ای امروزی که مثلا این نیروهای امنیتی از سگ در واقع استفاده میکنن که از مشام قوی که داره قاتل از مقتولم بشه شاید تشخیص بده از کیلومترها یک جنازه رو هم حتی پیدا بکنه خب میگه از این استفاده بکن اما این حدود رو رعایت کن این نجاست یکی از فلسفهاش اینه که توی زندگی خصوصی خودت واردش نکن اینو که میتونه به خانواده خودت و زاد و ولد خودت آسیب بزنه کو کجا کجا آسیب زده؟ قرب رو ببین چرا یک انیمیشن میاد میسازه به نام بچه رئیس شاید برات خنددار باشه اما این یک واقعیته که یک فیلم ای هست یک انیمیشنی هست یک معزل بزرگی رو داره اشاره میکنه که بابا وقتی که سگنات توی زندگیت این آمار زاد و ولد رو کم میکنه نباید این توی زندگیت باشه و باید خانواده رشد کنه و بره بالا خب این مسئله که 1400 سال پیش اسلام میگفت حتی اگه الان نگاه بکنی توی کشورهای جهان اول ببینی یه موقع گوشه کنار یک سری انجمن‌ها هست برای حمایت از حقوق حیوانات که میگن بابا خیلی از حیوانات که شما دارید نگهداری میکنید اینا اصلا جاش تو خود طبیعته اینکه این که از تو طبیعت بکشونی بیاری روی تخت دو نفره خودت این خارج از طبیعت حیواناته ه... حمایت ما از این حیوان اینه که برگرده به خود طبیعت تو زندگی خودش اینام که 1400 سال پیش اسلام ما گفت که یه خونه جدا براش درست کن تو زندگی خودت نباشه. و فارغ از همه اینها خیلی از عزیزان هستن توی زندگی آپارتمانی که شکایت میکنن از وجود سگ توی آپارتمان یعنی اینکه در واقع خیلی توی اجتماع ناراحتن. و حتی هزینه های بسیار زیادی که داره برای اصلاح سگ های تزیین برای تغذیهش برای نگهداریش برای بیماریش برای دندوناش هزینههایی که از یک فرزند یک بچه بیشتره. کافیه فقط سرج کنی ببینی و اینکه چرا من این هزینه رو بدم به یک حیونی رو هم از طبیعت جدا کنم اذیت کنم بیارم تو خونه خودم و هم این هزینه رو ندم به یک بچه یتیمی که الان حتی داروش رو نمیتونونه فراهم بکنه یا غذاش رو فراهم بکنه من همین هزینه رو بدم میتونم 10 تا بچه فقیر رو حمایت بکنم. و نکته آخری که میخوام بگم توی مشاوره های روانشناسی بخشی از مشاوره ها درمان افسردگی از دست دادن حیوانه. یعنی اونقدر الف و انس و وابستگی و دلوستگی انسان با سگ میتونه پیدا بکنه که اگر سگش رو ات دست بده دیوانه میشه و بعد افسرده میشه جنران و پینگیلوینا یادتونه دیگه این یک واقعیتیه که اسلام داره میگه که هم از حیوانات استفاده کن هم حقوقشون را کن و هم حقوق اجتماعی انسان‌های دیگر رو خدشدار نکن به این میگن یک پلتفرم کامل که اسلام ارائه میکنه این ویدیو رو حتما ذخیره کن که بعدا به دردت میخوره که جای انتشار بدی و برای دوستات بفرستی و همین الان هم این کلیپ رو نشو بده استوری کن که دیگران هم ببینن یا علی مدد خدا میگذره